امام باقر فرمود که پدرش علی ابن الحسین علیه السلام به یکی از کتاب‌های علی ابن علی طالب علیه السلام نظر می کن. لابد کتابی از دستورات امیر المؤمنین که اون دستورات طرق عمل و زندگی عملی خود اون بدرگوار بوده قدری که در این کتاب زین العابدین علیه السلام نظر کرد فیض بهل الارض کتاب رو روی زمین گذاشت و یقول من یو چی بها را میاره چنین عملی را هیچ کس ادعا نکرده است که ما میتوانیم مثل علی ابن طالب حرکت کنیم خورمان نمیخورید نه ما یلیم از قضایی افتار کنیم که علی همیشه افتار میکند نمیچم نمی توانیم باید که بتوانیم ولی امشب به جای شام سنگ به شکم میبد. البته من نمیگم که کسی نیتوند مثل از تعمیر باشد خدو هم گفت که شما نمیتونید نمیتونیم من واقعا اما اعانت کنیم ما اون را به بر و در یک جا در اون نامه معروف به عثمان ابن هونک می «الا علاوه این قد اکتفا من دنیا ها به فنره و من تومهی به من اینجور دارم زندگی می کنم خوراک خود و لباس خود را که شبیه تغییر مردم روزگار بود این مطرح میکنه, میکنه من امام شما اینجوری دارم زندگی میکنم اما اعانت کنیم ما اورا را به برا اون تقبا اعانت کنیم به اینکه تا اون اندازه که میتونید فرمود الا و اینکم لا تقدرون علا ذالک ولکن اعینونی به ورعن و اجتهاد و افتن و صداد فرمود شما نمیتوانید مثل من رفتار کنید اما میتوانید به من کمک کنید با چی؟ با ورای خودتون با پرهیز خودتون از گناه وجتهاد با اجتهاد کوشش خودتون تلاش خودتون اونچه مهم است این است که جهت جهت امیرالمؤمنین باشد جهاد جهت کنیم به سمت این الگو بروید